نشانه خیر منکتی بودن همین که بین آنها بین یکی انجام و از این برای انسان منکتی یا این آواریان دولت مربان امریکایی و دیگر طبعی آنها و طبعی ها ندوری نیست. یه همچی می یه ادعایی میکنند در عمل درست اکس رو را انجام دن. می دند. من آنها چند منحرس بکنم. ادعا میکنند کنند اونا متعهده به حقوق بشری. ت ها در چال خودشر را خورند کردن مین ما متحه به ب خودیم اونم این نه فقط در کشور خودش را به و ح دنیا و ادعای است. در عمل که در عمل ضربه به اطانت حقوق انسان در کشنرهای مختلف به های مختلف این های در سطح سر جنوید. زندانشان در در اراب حمله آنها به مردم دیو در افغانستان، در پاکستان در ملازه خواهده ماه بدون سرمشیدشان را بیوکته هم دوستی می کند. هم مردم را زیر پشار قرار می به روزانه تبریش را از افتان و کبستان بدون به اون یکی از که همین چند روز نوشته بود مایه در بچ خود شد.